چگونه برای نزدیک شدن به حضرت زهرا چه کنم؟ شما اون ها در مورد تقرب به هزارات محسومین و خصوصا حضرت زهرا ص همون ها بعد دل پاک بود دل پاک بشه حالشش میمون پاک بشه به ایشون نزدیکتر میشه میشه